تحویل میدیم میگه آف هم میگه تماس میگیریم ما چکرم خدا خدا, خدا, خدا, خدا. خدا میگم کارت کشیدی حالت بد شد نا چطور خواه احساس که هم فکر نمی کردی بشه حلق شد بشه شدی. بابا شدیم زندگی عروسی زنگ گرفتن همه خرج داره ها باید. اگه پشیمون شدی اصلا رو درو نمیکنیم بریم همین الان حلقه رو پس بدیم خب حالا نمیگی چرا سرحال نیستی نه چیزی نیست خب نه نباش اصلا بعد به دلت راه نده انشالله که توری نیستی خب حالا کجا می‌ریم گل فروشی دیگه منو بسو خونه دیگه من که نباید بیان خودام برام گل سفارش بدم <تصفيق> <تصفيق> خوش منزه خوش پس می‌بینم خدا خدا بله الان میرم گل فروشی گل میگیرم امروز نمیام بعدش کار دارم اُسَب به باشه. اما باشه. بساز به کار باشه. ولخراب. این همه تو خوبی کردم، این حماقت اعتماد داشتم تو من نارو زدی جریان چیه خودت نازم به اون رو از برنامه چقدر پول گرفتین آقا شمیره به خود اصلا نمیدونم چه دعوایی شده حرف میزنی وقتی سفتیاتو گذاشتم اجاره میکنه تو خدا به من بگی چی شده بیچاره گولت زده کی اما که دوستش داری امیر امیر یعنی تو نمیدونی اسم شمیره داری منو بازی میدی تو هم فریب بده به خود ده ده من اصلا نمیدونم نموچته حرف میزنه شما شما سوجو فندقی قیمت من چنده ولا اس کجا ضایب نه قیمته ما چنده؟ میشه به اون قیمتو آزاد گرفته. قیمت چی؟ قیمت ما دایره. به سامان چه ربطی داره؟ به برنامنده شده. این سامان در کوفته که اشپز، اون به برنامه میگفت چی هم چرت می‌زده. دیدنش اونجا. دست با برنامندی درو می‌گرده. باز چی بود به برنامه نمی‌کنه؟ برای چی بود با برنامه درو می‌کنه؟ لا بود میشه فرای داده، زری دیره. شما کجا مطمئنی؟ بس واسه چی درو می‌کنه؟ نه می‌کنه حسن سامان بایشی به از همچین کاری با کنم. از خوبی از با ارامی گرفتی دیگه. نه من با بایر نمی کنم. آلو گوریه. نمی تو نمی کنم. کنون گوریه بیان. که خوانه نمی دونه. نمی دونه یا خودت دادی دادیم او را. کورشم کور. آلو سامان. کجاییم بی دفتر؟ بی کار ادارم. نه همین آدمی. باشیم. شما کجا قبوس بردیم صفتا <متصفيق> که موقع از سختان گرفتم یاده صفتا تو یاده از شایمی بابا کنیش از شما بکنیم باید بایدون چی کنیم برو برون تو افزالی بیاد برو برو میگم تو بیاد بایی سو اومدم برای در محل کار من مگه من به تو نگفتم اینجا الان به اطلاع موذاشم که نایمدم باره دفعه بعد میام آه رو تو میبرم منو تهدید میکنی؟ مهریه میخوای؟ تهدید نبود آه. پس یعنی مهریتون میخوای؟ آره اگه از اون شرکت نیای بیرون آره میخوایم چرا فکر من هیچ وقت نمیتونم برای خودم کار بکنم یعنی اینقدر بیورزم تو دفعه پیش سر اون کار خونمون از دست دادی. رامین تو آدمی نیستی که بتونی واسه خودت کار را بندازی. هر کسی رو تو این دنیا واسه یه کار ساختم منم برای زیر دست بودن ساخته شدم آره؟ چه فکر میکنی زیر دستی؟ اون شرکت، اون کارخونه همش مال توه اون شرکت مال من نیست. مال بابام من کارگر بابامم. من میخوام کار خودم رو داشته باشم. به کی روخه خودت ثابت کنی تو؟ به خودم خسته شدم از بس که به من گفتن کارخونه باباد شرکت باباد من میخوام کار خودم رو داشته باشم میخوام برای خودم کار بکنم تصمیمم رو گرفتم میفهم پس میخوای ادامه بدی دیگه نه؟ میخوام ادامه بدم بله من اون دفعه بی به آب زدم قبول دارم ولی این دفعه میدونم دارم چیکار کار میکنم کلی تحقیق کردم ندارم میفهم اینو؟ حرفای عاشنا میشنبم تحقیق کردم قبلا هم اینو رو نمیگفتی؟ رامین من حرفانو به تو زدم تصمیمم گرفتم برنگردی شرکت بابات مهریام میزارم اجرا مهریتو با طلاقت یه جا بهت میدم بفرمید میدونم رسم نیست مادر دختر بیاد با مادر پسر حرف بزنه خوستم برای من که دخترم تجربه یه شکستم داشته خیلی سخته خانم من رفتم با شوهرتون صحبت کردم. برای اینکه کار به اینجا نکشه بله میدونم ولی بله موضوع مهمی این وسطه که دیگه اون دست من و شما نیست موضوع اینه که رونا و آقارش هم رو دوست دارن. بعد میدونم. در واقع ازدواج رونا اشتباه من بود. شما خودتون زنین. میدونین اسم ما تعلقه بودن چقدر تلخه. حالا این که آدم بخواد به خاطر یه انتخاب اشتباه از حق دوباره زندگی محروم بشه خیلی تلختره. من باقاً نمیخواستم شما رو نراحت کنم میدونم شما بالاخره نگرن پسرتونید حقم دارید منم پسر دارم شاید اگه جای شما بودم منم مخالفت میکردم ولی خوشبختانه اون استواش خیلی زود به هم خورد ولی مردم که اینو نمیدونن مردم چرا باید بدونن اصلا به اونا چه مربوطه باید اسم کامیار توی شناسنامه رونا نیست همون موقع پدرش با حکم دادگاه شناسنامه رونا رو عوض کرد ببینید خانم من خیلی جوان بودم که پدر بچه آمو از دست دادم بله در جریانم خیلی متاسفم خدا بیام رزدش سختی زیادی کشیدم تک و تنها بدون هیچ کمک و پشت الانم الان همه امید من این دوتا بچه هم واقعا دلم نمیخواد براشون مشکلی پیش بیاد یا توی درد فرنیس آرش دوچار درد سری بشه شما تضمین میکنین شوهر سابق دخترتون دیگه سراغ پسر من نیاد اگه اتفاقی برای آرش بیفته کی مسئوله بله. بله بله بله گفتم که آقای نظری گفتن اگر امکانس هست چک و پردا نبری یه هفته دیگه من نوست هم باییدون نگه نگهتم آقا گفتم که هموز نظری سر شدوقه این رویتی نداره منتظر میشه سلام سلام اینه صورت به آقای عصنفره. گفت هم تو شروع تو واسه اینکه تلت میخورا اگه تعاود ندونی واسه خاطر رونا خانم نایمدم بس برای چی آمدی من یه پیشنهاد دارم شما ماشهل دستتون سنگلی من یه مدار پول دارم میخوام توی کار مطمئن سر گذاری کنم این هم جا چرا آمدی سراغ من به کسی اعتماد ندارم من نه شریک میخوام نه سرمه گذار ولی خب من از اوزای بازار خبر دارم میدونم کارخونه جتران تو چه شرایطی هستم از آدم آقل پولشو نمیاره اینجور جا شما خودتون چرا توی این کار موندید؟ چرا پولتونو بر نمیدارید؟ کارخونه رو نمیفروشید با پولش راحت زندگی بکنید من زندگی راحتو دوست ندارم باید حتما کار کنم در هر شرایطی دقیقا منم همینطور منم میخوام کار کنم ولی با کسی که بشناسمش. شما آدم سوریه هستی میدونم سلام کلا نمیذاری کارتونم درست زره نمی کنی البته این پیشنهادم هیچ ربطی به رونا خانم نداره البته احلاقه من بهشون سر جش زرهی هم تغییر نکرده ولی خب کار یه بحث دیگه هست انتظار داری من چی بگم هیچی فقط تو فیش نداشته کن. مامان خدا. الو مامان مامان سلام. من که میدونم خونه گوشیو بردار دیگه که. الو ببین مامان من دارم نظری رو نرمش می کنم شو پردار دیگه واش سلام بیا ولی کار رو دارم میخواستم لباس عوض کنم بعد بیا نمیخواد بیا یعنی هر وقت میدنزه تو زنیم حالی در چه تو که هستی؟ داری اینجا چیکار میکنی؟ از همون روز اول اومدی اینجا اتماس کردی استخدامت کنم همش فیلم بود که سر از کارهای من در بیاری؟ همه چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ رقل من زوددی به بهرامی؟ کی همشه حرفش زده؟ تو نرفتی پیش بررامی؟ باش اووام کردی؟ دینت چقدر خ تو فروختی؟ رفته باشم مع من. بررامی دیگه مدیر مای سراس. رفتم خواهش کنم ما رو نی گردره. میگی؟ پس دیروز پرسیدم میشنناش گفتی نه نه ها؟ با تو هم باید چی گفتی نمیشناسیش؟ دارم باید حرف بزم جواب منو بده براره بشم مدیر آنسلام تو؟ مدیر بشی؟ آره حقم چه عقل؟ حقی که پدره در پدر من خورد شرت و پرت نگو؟ بپرس اب بابات خوب میدونم به من خیانت کردی داری مزخرف بایم تحویل میدی؟ مزخرف نیست بابایت خودش میدونه چیکار کرده تو نیست بابای من رو ببایت دارتو یه امور منتظر این روز بودم که هستو نیستش رو ببایت بدن چی میگی تو؟ چرا پای پدر رو من رو میکشی وسط؟ یوم زحمت کشی دیگه این ماهی سرا سرپا بمونه به اهدی هم ظلم نکرده برای پول منو و فروتنی ها این دریبری رو میگی؟ من میدونم با تو این چی کارم هیچ رب توی شایی نه دروغ این دروغ از کاری که کرده کذیب تره چقدر از این پول گرفتین تا با هم دست به ایکی کنی؟ از تو و بحرامی که شکایت کردم صفتهای این اینم گذاشتم اجرا می آقای جایبی به خودم ها خبر ندادم. به من تو باشی تو رو سارم یه روزی بذاری بر اوه، صفش رو بگم آقای دیگم باشی تو رو صفزم به شو ربتی بیرون از اتاق من رب داره خیلی هم رب داره آنه آقا گفته دلش خواسته به نام زدش بگه چه میخوای بکنی؟ Bu şar. Heh. Ha inmo. Çok. Çok ağır oldu bu nazar. Çok. Abi de futbolun yeni bir üzere bu davadır bozuk olur. Bir şey. Gidebilirim. Programı tamamen bahre. Ya. Şar. آبه شمید! یا آبه شمید! می کشتم این! بنام به محرم ازده! گرفتی! مش خیلیجی و کنشو از جمیدون! آبه شمید! بنام کن! می کشتم این پشترم! آبه! بگیم برای پیلات دشترم! آجه بنا! آقا مش بذار بخدا من قبلا داشتم و برم بیاد میگی که نه نم نه. سرگی سرتو تو آقا مش بذار اینو بر تو کار کن. میتونستم از دن که خیانت کنی. آقا مش بذار و برو بیار. برو برو برو برو Thank you. کسی رو وردی هنوز نه گفتم اگه خیال کردی بر میگرده بر نمیگرده امروزم با ندا حرف زده آب پاکی ریخته به دستش پس مهلیشون میذاره ایش رو آه. چه به هم ریخمه من 5 سند خونه بدم بش. میخوای نه. من به سلامو بهتر میشناسم. میدونم کاری میخواد انجام میده. پس بهتر از راه درستش برو. راه درست 350 میلیون وام 18 درصده. میدونیم ماهی چند میشه. اقلا سه میلیون در ماه میده. اگه ندا مهریش بزر بهش تا خیلی خیلی شانس پیارو و قصبندی کنن میدونی چی میشه؟ بعد بره از این اون قرض بگیره اونم نیست با بهریش چقدر اون که بدتره حسین اقا من دلم میخواید شما هم راضی باشی به زور؟ نه ولی چاره دیگه هم نداریم خریده اگه نتونه قسطاشو بده اگه زنش مهریشو بزار و نتونه بده نیایی بگی کمکش کن چون من نمیکنم، یعنی نمیتونم کمکش کنم چون بعض اوزه کارخونه خوب نیست اوشالله که این نمیشه. فریده من سندِ خمر بهت میدم. فردا میبی میگم که اش سلام سلام خسته نمشی. پسری چی کار داری؟ من باش کاری ندارم خودش پا شد اومدین شد چی؟ من میدونم پول دار شده میخواد سرمه گذاری کنه از کجا؟ نمید حسین آقا پای این رو از اینجا ببر ما با وقت سر از کارخونه و شرکت در بیاره شهر میشه تو زندگیمونم حواسم, حواسم هست خدا کنه. بز امام نه خدافس آقا پسر شما مطمئنی این دوره و کوچه به نام نرگس نیست؟ بله مام خارج کرده بودم. شما یه کلید نمیخواد به من بدین؟ اگه میخواستم بهت کلید بدم قفل عوضم کردم. آخه زشت جلوی در رو همسایه تو نمیخواد نگرن در رو همسایه باشی به فکر خواهر بردار خودت باشی. خم چرا فکر میکنی کنی نیستم؟ بودی سهمشون رو بهشون میدادی خب میدم؟ کی؟ ما دست رونا رو بذارید توی دست من من قول میدم فرداش این کار رو انجام بدم قول میدم خواهش میکنم این کار رو بکنید ما باید چی کار کنم برای تو با پدر مادرش حرف بزنید با خونه مادرش صحبت کنید آخه چی بگم؟ نمیگن کامیار این همه پول و پلا رو از کجا برده چی جوابشونو بدم؟ من ارث پدری بهم به رسیده دزدی که نکردم اون ارث که همش مال تو نیست فردا می خونه تو بفروشی ماشین تو بفروشی پول خواهر رو بردس تو بدی هیچی چی نمیمونه اون قدری میمونه که باش بتونم یه خونه و زندگی تشکیل بدم بابا اصلا این به چشمش نمیاد خواهش میکنم ازتون این کارو بکنید کاری از دست بر نمیاد اگه بخواید برمیاد میاد میتونید نرمشون کنی. ببین کامیار تا وقتی که سهم خواهر و برادر تو ندادی جا توی این خونه نیست فهمیدی؟ بله یه مادرینو بذارو چشمت آب از ما خوبیه این کارو نمیکن صورتت چرا کبود شده راستشو بگو بابان راستشو گفتم دیگه بساط دعوای اونا دست آقا پیشمان اتفاقی خورد تو صورتم قصدی نداشت سامان چی, چی کاری کرد بی خود نبود بهش اعتماد نداشتم نمیدونم بساط دعوی یه یه حرفه مورد پدر آقا پیشمان میزد انگار دنبال انتقام بوده یعنی با نحشه اومده اونجا حالا مهم سفته هاست خودم فردا صبح میرم با میزنم سلام سلام سلام سلامو چی دی چی گری کردی نه گریه نه کردم دامادت قرمز شده عشق تو ماده به یه داروای دادن من بهش حساسیت داشتم تا تو بیا با دا. کبودی خوردم زمین. چجوری خوردی زمین نیتی که اینیتی که فقط کبود شده؟ نمیدونم. شده که شادی به من دروغ نگو. راستشو بگو ببینم چی شده. هیچی بابا. تو چرکت شوی مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ صورت تفا هفو... کسی ازیادت کرده موزایمه شده؟ نه. و چی کار کرده؟ دسته آقا پیمان خورده تو صورتم خورد یا زدت؟ نه بیچاره دشت به کسی دعوام کرد بعد نرفتم سواهشون کنم دستش خورد تو صورتم دعواشون ما تو رب داشت؟ من نخواست رقعی موزایی در بیکر کار کنا گفتم الان آقا پژمان میگه کسی که رقم موزایی در لو داده تموم بوده لو داده مایی سوادم از چنگ آقا پیجمان در باردم چرا این کار کرده؟ پیشمان پیشمان می دونم اما صدات حرف حرفه در مورد پدر آقا پشما نبود پشما با تو دعوا کرد نه قم پسر با چرا تو رو زنده گفتم که اتفاقی شد مال انا پشما مخش کنه می دونم بود بهم گفت میزارم تو میذارم اجرا میندازمت زندان ناراحت نباش مادر من خودم خودمم میرم پی‌سی‌س واسه. قبلاً اینکه ببره باید بریم مامان. خیلی عصبانی بود. بریم گفتم میندازم. نمی‌ذاریم این کارو بکنه مادر. اصلاً نمی‌خواستم اینجوری بشه. هرچی بهش میگم باورش نمیکنه. الو. آها اونارو آوردن. باشون من اینم دفتر آدم برمیکردم آراش سود برگردیو گلی نکم مادم ترس نه ترس مامونم نه ترس خودم اینم باش یخ بیارم بزارم سلام بابا جان کجایی عزیزم؟ ماهی سرا؟ من قول ندادی که امروز داری ماهی سرا؟ عجب کاری کردی لابد گلم سفارش نددی خب اینطور که میگی سالبولی هم نرفتی دیگه بابا زودتر بیا خونه منتظرتم بیا میریم خودمون یک گل آماده میخریم آره یه دست گل میخریم زودتر یا دوش بگیری منتظر تم با بجون خیلی پرسونلی نیستم توی شرکت ازه بدید فردا زنگ بزنید فکر میکنم اونوید ساعت هشت صبح تا چار ورد باشن پاسخ کنم بچه ها بله بله بله بله بسیار گربان شما خود لاگفت چه دست گلی به اب داده؟ واظن نبود چیزی بگی صورتش که بود چه ولی سرش هوارتی؟ هنوز نگوردم ولی میارم تا بفهم خیانت یعنی چی. غلط کردی دست خوارم اون کردی. من نذادمش. حرفو درانتام بفهم. هرشاد حقش بود. خواهر دان خیانت کرده. قیمتمونو لو داده. هست و نیست نیستمو به باد داده. برای چی توهمت میزنی از توستش از کجا قیمت می‌دونه؟ کدوم دوستش چرا زخرف می‌گی؟ خبر نداری؟ از چی؟ خواهرت با ساوان دوست عاشقشه قیمتمنده به وجود اوتاستمارو من دو دو دو دو. در نمیارم کیستون کاری رو ولی آره چه حرفی تو اصلا چی خبر نداری به من چه آقا چی باید خبر داشته باشم از اینکه فراد با چی میده با چی میاد چی کار میکنه ده ده ده دهنت دهانه حرفا زن خارم اهل حرفا نیست بدبخت بیدا چند وقته با هم تو رابطه ان بفهم داری دل بزاره. خوهرم قدیت ها نیست میخوای قبول کن میخوای قبول نکن من چه که از خوهرم تو ها سفت تو رو سکه زبون زمون آدم نمیشه نه؟ نه نمیشه سفتهایی خوهرزو میذارم امشه را و دزمشت لنبطر آدم تو بله از بکن امکن بیزارم تو همم تو. دماغ شدم ما تو پخشو بزهرم دل شوره بابا اینا دیشبardino اون شروفته. بیاستم بزن. خودی گفتین ما کمک نمی‌کنیم. ولی نمیذارم طلاقشام بده. دیگه به سامان دقیقاً کیه شادی؟ طوری شده. هر کاری می‌کنم اصلا دانلود نمی‌شه. قرار همه این رو من انجام بدم پس برای چی به شما حقوق می‌ده؟ آرش یه بینامون نشووردن؟ شاید همون باشه فقط حالش داره. تو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 ماه از را رسید روی را پل نشست دکمه های رال به من دونه دونه گل شدم گفتم این یه است خیلی شد به آسمون همه ی ستاره ها دونه دونه گل شدن مهرابونی ایاش نازنینی ایاش آخریم دیگه یین جورچینی ایاش مهرابونی ایاش نازنینی ایاش آخریم دیگه یین جورچینی ایاش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 مهربونی ای یش نازنیلی ای تیکه ای ایش.